زیر نظر مهدی سهیلی دگان سخن شناس و صاحب دل درود گرم و پرشور ما را بپذیرید در هفته‌ای که گذشت به مناسبت برنامه فوق‌العاده جشن مشروطیت موقتاً رابطه‌ی ما با شما قطع شد و در این هفته به مهر شما بزم می‌داریم که شاعران ارجمند و هنرمندان محبوب در آن شرکت دارند اما قبل از اینکه از شاعران گرانمایه نام ببرم اجازه می خواهم نکته ای را یادآور بشم آن نکته عبارت از این است که در هفته های پیش نامه های فراوان و قابل توجه از سراسر کشور به دست بنده رسید که شنوندگان صاحب دل ضمن اظهار محبت به این برنامه تقاضای ارسال چند شعر رازبنده داشتند بنده میدانم دانم شنوندگان عزیز به من حق خواهن داد که بگویم ارسال هفته ای چند قطعه شعر برای صدها شنونده امکان پذیر نیست ولی برای اینکه های گرامی شما را بدون جواب نگذاریم به استحضار میرساند که نسبت به هر قطعه شعر کتباً اظهار علاقه فراوان بشود آن قطعه شعر مجدداً در نظم شاعران به وسیله شاعر همان شعر تکرار خواهد شد امیدوارم عذر عدم استطاعت بنده را در ارسال شعر بپذیرید و اما شاعران گرامی این هفته شاعران بزمین هفته عبارتند از یک چهره درخشان علمی و ادبی یعنی دانشمند محترم آقای دکتر محسن هشرودی که مقام علمی ایشان بر هیچ کس پوشیده نیست و امروز در بزم شاعران به نام یک شاعر شرکت فرمودند تنها به نام یک شاعر البته اگر بیان دیگرم داشته باشن غیر از شهر استفاده خواهیم کنید. همچنین آقایان دکتر خسروف فرشید ورد و علی اکبر دولفی که شاعران بزم ما هستند. مهمان گرامی ما هم دانشمند محترم و نویسنده گرانقدر آقای دکتر محمد علی معتمد هستند که حتما شنوندگان عزیز با مقالات جذاب و انتقادی ایشان در مجلات آشنا هستند ایشان هم لطفر مودند و دعوت ما را پذیرفتند و از سخنان گرم و شیرین ایشان لذت خواهیم برد خواننده و نوازنده بزم هم هنرمندان پرعرزش، آقایان ایرج و فرهنگ شریف هستند که با نوای دلانگیز و پنجه شیرین خود برگرمین بزم خواهند افزود دیگر میهمانان عزیز ما خانم فیروزه امیر معیز و آقایان رزائیان و پرویز بهرام هستند که در موقع خود از هر یک استفاده خواهد شد. حالا بنده نمی‌دونم چطور باید شروع کنیم در یک بزم ادبی آقای دکتر معتمد تکلیف کردنه به دوستان به هیچ وجه شایسته نیست. هر طور میل آقایون هست البته روش ما و مسیر ما این است که میهمان هفته صحبتی می‌کنه. اطاعت میکنم حالا خواهش می‌کنم که خاطره‌ای صحبتی حرفی تاریخچه‌ای هر چی می‌کنه. بزم رو با بیان جناب شروع مدتی از زندگی بنده در خدمت اداری و خدمت دولت کذاشته فکر میکردم از صدها خاطرات تلخشیرین که به خدمت دولت دارم هیچ یک متناسب با این بزمی که برای رفع خستگی از این مطالب مردم بهش پناه میبرند نیست عدم متناسبه چی قربان؟ چرا؟ برای اینکه مردم از کار اداره از کار خشک اداره از مقررات از این حرفا خسته میشن ما جای شیرین اداره تعریف فرمایند اجازه فرمایید خوب اداره تعریف بکنم فرماهی... مختصر تحصیلات بنده رشته حقوقه که اون هم به تناسب هیچ تناسبی با این بحث نداره فکر کردم که خاطره ای براتون عرض کنم که نه تنها متناسب با این بحث باشه بلکه مربوط با این بحث باشه صحیح. و اون دعوت جناب از بنده و برای اطلاع آیون ارزمی کنم چندی قبل بنده در منزل بودم تلفن زنگ زد آقای سهیلی از بنده دعوت کردند یا از بنده خواستند که بنده به عنوان نویسنده در این می شرکت کنم هرچی فکر کردم واقعا و نه شایسته عنوان نویسندگی هستم نه چین ادعایی دارم در تردید بودم که از اطاعت امریشون یا پذیرفتن این عنوان که برام بسیار مشکلشون نیستم کدام رو قبول کنم همون برنامه ما برنامهی حفصه جناحو شکست خیلی نه نه این جدایی واقعا مقالات حضرت علی رو خوندم خیلی متشکرم خیلی متشکرم, خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. خیلی بود. امروز صبح باز در منزل بودم تلفن زنگ زد آقای سوهیلی فرمودند که بنده وایس در ظرف چند دقیقه خدمتتون برسم که فراموش کرده بودم امروزه و در برابر امر واقعی قرار گرفتم اون منو قانع کرد که بیام اونجا فکر کردم اگر مطلب گفتنی نداشته باشم مطالب شنیدنی در این غزم بسیاره و من هم مثل دیگران میام و برای رفع خستگی از اشعار دلانگیز ایونس استفاده خواهم کرد خب جوان در دنیا هر داد یک ستدی داره شما اگر که بشنوید و دستگاه ایراندتون کار کنه با دستگاه دندتون کار نکنه که ما قبول نداریم حالا اگر چیزی یادتون نیست ممکنه صعب بکنید خود این مطلب رو خود این خاطره ای که مربوط به 20 روز قبل نه ندارم قبول ندارید این بنده که ابول بس... ندارم بسیار خوب <تصفح> وقتی اشعارایون تمام شد اگر وقتی به درز خواهش می کنم لطف کنید دل من می که ا... اینطور نفرمایید که آخر حتما باشه وسط اشاره حال یادگار کردم استوری ویدیو جدید بفرمایید الان بان حاج میلو با نهایت میل ارزمون ولی باز همون که عرض, عرض کردم این شکست نفسی نیست و من خودم نویسنده نمیدونم خب کسی که گاه گاه به خاطر دلش چند سطر میمیسی نویسنده ولی جناب ولی که مرتب و مداوم من از این مقاله می خونم خب از خوانندگان از این زحمت مداوم بنده عذر او می خوام پیشاپیش. راست. <تصفح> البته <تصفح> <تصفح> صورتون پس الان نوبت می بید بجناب آقای دکتر هشرودی. آقای دکتر جناب ولی که از رادیو خیلی صحبت فرمودید ولی عنوان بزم شاعران نداشته. و حالا در این بزم حال بزمی باید داشته باشید خاطرات شیرینی بفرمایید. صحبتی بفرمایید. اگر نه که بیانی راجع به شعر داری بله. که میتونه ارشاد بکنه شاعرای جوان رو برای بی سابقه با این برنامه هم من نیستم در اون ده سال پیش این برنامه صدای شاعر بود که منم یکی دو سه بار شرکت کرده بودم البته زیاد بی سابقه نیست ولی برای امسال هم به جنابعالی که آبی امروز منم موفور و همون امیشه ساله قطع شعری رو فعلا من خودم میخوام با اجازه ایون ولی به دعوی شعر نیامدمم یعنی شغل شاغله من البته این نیست مثل بیشتر شعرا. برای جناب والی تو واقعا گفت تواین داره به کار شاعری شما یک عالمه راهی داستانه که مقابلشه. چه ظاهرا این رو به نظر میرسه رسد درست هم است. برای دیگر دوستان هم من تو سوال اون همین شعر یه جور تفننی است. یعنی از این ماپ که اگر واقعا اون حس درون اون رمز آنیتی که نمیشه به انکار داخل انسانی اگر اون واقعا تشخیص نشه شعری به وجود نمیاد. باید. هر شعری به خاطر خاطره یه در میگیره از من البته سابقه این که این شعر چرا تکمین شده نخواهید ولی برای امسال عمرتون یه قطعه سایهیست میخوانم خواهش میکنم خب باقی شریف هم داره سازشون رو کوک میکنن که باقی دکتر حشودی کمک بکنن این همراهی بکنن برای آن تمام شما کوکی سازتون خواهش میکنم شهر جماعی دکتور؟ سایه سایه سایه شما رو از سر ما کم نکنیم و سایه شهرتون بگیم این سایه با اجازه مستمین محترم دامن کشد چون مهر گریزان پای ایسای چون خیال گریزان با من به خیره راه همی پویی زین راه رفته باز نمی مان از سیر خیش خسته چون بازایم با من به سوی رمکده بازایی فرسوده سرنهم چون به بادین شب سربسترم فتاج بیاسایی خور تا به نور فیش جهان گیرد میابمت به جایه دوشین کم کم ز دلمت سپری گشته سر بر کن ز خواب شب نوشین خواهم که یک زمان ز تو بجریزم با خیرگی به دامنم آویز ور تنگتر دمی به برت گیرم همچون خیال گم شده بگریزی زین جستجوی بی هده ایسای فرسوده گشت جان و به سر شد رو یا ترک هم رهی کن و بگذارم یا غمگسار من شو و با من سوز گیرم که مهر بر تو به افسونی بخشد به فیض هستی خود مایه فارق مشوز ما من که اگر میرم مرگ من است مرگ تو ای سایه بسیار لذت بردیم آی دکتر و من صدا میکنم که خانم امیر معز دومین قطعه شعر شما رو بخونم رو میفرماییم؟ خواهش کنم دومین قطعه شعرشون عنوانش سایه هاست پس اون یکیش سایه هست سایه. یکیش جمع باها داره سایه ها شما تحت تاثیر سایه حسیدای دکتر ظاهره من <تصفح> اون سایه وار زندگی میکنم <تصفح> یعنی سایه تون بر سر اشخاصه مثل این که به این اون باج گذاشن خب بنده در شعر خاقانی دیدم وقتی آدم دیوان خاقانی رو تصفح می‌کنه می‌بینیم خاقانی تحت تاثیر صبعه بعضی شاعرا رو می‌بینیم در دیوانشون هم. از کبوتر زیادی یاد کردن خاقانی چون زیاد به سفر مکه رفته و حجاز و در اون بیابان و اون وادیه پر رمل طلوع صبح رو دیده خیلی لذت مبعثه هیچ کس به اندازه خاقانی درباره صبح شیر نداره و من اینکه عرض کردم عنوان تفری نداشت و سوالی بود شهیه. شهیه. کسی تا تاثیر یک پدیده است که کسی جازم. شب رو دوست داره کسی از غروب خوشش میاد و بدون اینکه توجه داشته باشه یا خداگاه یا ناخداگاه میبینیم در شعرش اون پدیده اومدیش برنامه‌ای از اونجا اومده شده این است که حالا این سوال رو کردم به این علت خب خانم امیر موز خواهش دو من کشید و رفت تو خورشید از افاق دامن کشید و رفت چو خورشید از افق تنها به باغ ماند از آن سایه های شب در دیدگان خیره من تیرگی و زود تا چیره شد به جان من افسانه های تب این سایه های مبهم و درهم به چشم من واه عشق های گذشته در ملال این تکرار رو فقط می‌خوام بیتو لطفا بله بخوش این سایه‌های مبهم و درهم به چشم من اشباح عشق های گذشته است در ملال ده شنگ. ده شنگ. شب, شب. شب شیرگی دهد به سرنگوشت ده. ده. های غم تا بردرند دفتر افسانه خیال آن سایه بنفشه رسته به طرف جوی آن سایه بنفشه رسته به طرف جوی موی سیاه دلبر دور جوانی هست. آن سایه های نرگس فتان نیم باز پشمانم نیم مست شب کامرانی آمد آه آن سایه بلند از سرو صحیب به باغ آن سایه بلند از سرو صحیب به باغ یادی از قد و قامت معشوق رفته است بله خیلی لطافته وین سایه های مظلم مخفی به گوشه ها افسانه زمان زی خاطر نه افته امشب امشب به یاد بود زمان های گم شده ره من به با در آغوش سایه هاست ها در جستجوی جان تو همراه یاد ها افثانی خموش تو در گوش سایه ها آفوار نظر بنده اگر که جنابای دکتر هرشودی جزین یک شعر نفرموده بودن همین یک شعر کافی بود که از شوارهای عالی مقام باشد بله حق میدون خب حالا مثل که در قیافه میخونم که آقای دکتر فرشید ورد معادله های دکتر اشروودی از سنشون زیادتره ولی بله. آیدکتور البته اینکه سوال نکردیم آیدکتور اشروودی از خانواده شمس هستن ولی با نام سرکار داد کم و بیش آشنا باشن و با شهروندان دوست داشته باشن شما رو بیشتر بشناسن. اولا بفرمایید که جای دکتر در چی هستی؟ من دکتر در ادبیات هستم و خودم شاعر نمیدونم بیشتر در دستور و کارهای تحقیقی ادبیات کار کردم. 18 سال در تهران دبیر بودم و حالا در دانشکده ادبیات اصفهان استادیار هستم. گویای بیشتر بیوگرافی شما شهرتونه که با به احساسون هم پی ببریم و تمنونم می‌کنم شهرتونه بفرمایید یعنی دو قطعه شعر بفرمایید پیشبینی شده که صدای بنده هست بهتره سر کار خودتون بفرمایید و دیگریش خواهش, خواهش, خواهش, خواهش می‌کنیم یکی از آقایون یا آقای رضاییان یا آقای بهرام شعری که بنده در نظر گرفتم در این برنامه به خونم قطعیس به نام از یاد مبر عشق من خاطره عشق من از یاد مبر یادم شاخ گل نسترن از یاد مبر بسیار مطلع خوبش آن گل یاس سپیدی که به دستم دادی ای گل یاس سپید چمن از یاد مبر بسیار بسیار. خاطرات خوش این عشق جنون آسا را مبر بوی خوش یاس من از یاد مبر آفنه. چون به لب محتاب گل روی ترا بوسم ای گل محتاب تن از یاد مبر اون پر نرم نسیمی به نوازد رویت نغمه نرم غزلهای من از یاد مبر یاد بادون که مرا یار عزیزت خواندی یاد این یار عزیز کهان از یاد مبر از قمت سوختم با سقمت ساختم این همه سوختن و ساختن از یاد م عالم و هر چه در رو هست ببر از یادت لیک دل دادن و عاشق شدن از یاد مبر زییت خوبی یکترین معرفیشون این شعر لتیفیشون بسیار بسیار, بسیار بس فهمت. شاعر در شعرش آقای دکتر زندگی میکنه همینطور بسیار شعر با یک نظره دقیق میشه فهمید شاعر تا کجاش رسیده پایگاه علوم و پایگاه حس و پایگاه درد بسیار سکیه برحال این گویه های راز درون آقای دکتر فرشیدور بود خند درست دکتر از یاد بود به طرف آقای رزایان یا آقای رضایان اصلا میگم که اون طرف از یاد برده یا نبرده هنوز این رو ما بدونیم که اینجا ازم دادگاه گرفتن عقاریر نیست اینجا که ما بدیم اونیکه خودشو میذنن تو خاله خطی موقع بدلش میسازن سلام علیکم خاش عرض بدم مراکتون حالا آقای بهرام یا آقای رضایان کدوم دیگه دارید که این شعر دوم از آقای فاشید وارد ضیافم فرمایید به که آقای رضایان نوبت گرفتم شوی یارم به عالم داستانی می کنم اگه برام بران نبود موقع که خوندن راه بریم دیگه مرخص بید یار شوی به عالم داستانی می کنم با گل جاودید شعرم جاودانت می کنم. یارشوی آرام جانم با بهار شعر خود دل از بهار گلفشانت فشانت می کنم. یارشوی الهام بخشم در شب الهام بخشم بخشم از تاج غزل بر سر تخت هنر معبود جامت می کنم در دلدار من بر آسمانت می برام افسر خورشید و ماه و کهکشانت می کنم بسیار, بسیار بس شویدم ساز جانم شویدم ساز جانم جان براحت می دهم قصر دل می بخشمت اشغا شیانت می کنم می تراشم از بلور شعر اندام تو را با خدای اشگ و مستی هم انانت میکنم. دلوه جادوی شبها را به چشمت می دهم نوشخند صبح و تاج آسمانت می کنم از پرند اشق و ناز و از حریر جان و دل بر پیکر چون پرمیانت می کنم. هر چه زیبایی با آلم هست می به تو تاج زیبایان و خوبان جهانت می کنم چه زیبایی به آلم هست میبخشم بخشم به تو تاج زیبایان خوبان جهانت می کنم نبهار روی تو روزی خزان گردد ولی من به شعر خوش بهار بی خزانت می نوبهاره حضرت میخوا نوبهار روی تو روزی خزان گردد ولی من به شعر خوش بهار بی خزانت میکنم خیلی بشید. خیلی خیلی گر جر بنوشم جرعی از جام شیرین لبت لیلی دوران و شیرین زمانت میکنم تمام شد سیار بسیار سیما دکره شدی البته از خاطره و یا صحبت آقای دکتر معتمد باز موقعی خود چون دافتر باشن استفاده خواهیم کرد ولی من میخواستم اصدایی بکنم یه مطلب یه تذکر یه تفسری درباره شعر زمان بفرمایید و البته خود جنابالی بهتره از هرکس مسبوخ هستید که خیلی نوسان در کار شعر پیدا شده و هرکس است که این شعری که من میگم درسته و این مکتبی که من پیروی میکنم صحیحه ذابطه‌ای برای این کار هست؟ این که در جناغالی. اگر شک ندارم برای اینکه با تمامی دعوی‌هایی که گویندگان قلبم کردند به شعر اوبجکتیو رو پیش کشیدند، هنر به ذاته سوبجکتیوه. یعنی با ذهنیت انسان بیشتر کار داره. عالم هنری در که منعکس در عالم خارج میشه یا به وسیله الفاست و ترکیبات معانی یا به وسیله تجسم یک ده خیالی نقاشی یا مجسمه معماری از نظر هنر پلاستیک ولی با این همه عالم تفنون هنری بیش به ذهنیت هنرمند مربوطه برابراین الت شعر در در خود شعر گوینده است. مگر اوری حلبص تغییرید اون هم به است. اما شعری وقتی اسی بی بشكل این به ذهنیت خود هنرمند مربوطه، و این ذهنیت ها چون متمایزند هر شعری از شعر دیگه بذات متمایز خواهد بود و دعوی شاعر در این مورد صادقه وقتی میگه اینش که من میگم اشیری زیرای گفته ی خودشه میگه و این ذهنیت خاصه بود گاهی ما این و به ازهان مختلف میشه که به اصطلاح ادبی تبارد میگن خب اینجا مسئله مقایسه این که کدام معنا رساتر پیش میاد و این جزء صنایه ادبی محسوب میشه در واقع اینجیه مربوط به ذات هنر نیست بلکه این به بیان هنر مربوطه ممکنه،, ممکنه کسی در بیان هنر قویتر باش و به همین دلیل هم شاعرای دست اول و 2 و 3 و 4 رو داریم صحیح گفت اما در مقام ذهنیت و در مقام ادراک و احساس من واقعا تمیزی نمیتوانم ببینم بین احساس هیچ شاعری این همون افتاب جهان افروز است که همین تاپ برای آرام جای آدوسم بود واقعا این شعر هنوز هم زمین بینی صادقه ما هر من افتاب رو استعاره جدی می کنیم ببین آدوسم بود اما از نظر علمی بخواید نگاه کنج این اون آفتاب نیست رنگ هزاران هزار خروار از روز نشم شده هر ثانیه ای آفتاب 3 میلیون خروار از وزن خودش کم می‌کنه تا این جهانی رو بی ولی با این همه این همان آفتاب جهان افروز است ذهنیت شاهر رو اگر بخواید از شعر بگیرید شعری باقی نمی‌ماند بنا بر این دعوی که به شعر آنجاجه شعری متحد دست نیازند یا فرض کنید ادعای شعر رو استخدام می‌کنن در عالم اخلاق یا دیگران این به ذات خود شعر مربوط نیست بلکه می مسئله استفاده هنری داره یه منظوریه همینشان که علم رو هم میتوان استخدام کرد در خانه های مردم و بم ساخت در حالی که ذات عالم در جستجوی چین امری نیست دنیا هم برای علمی رو تحقیق می‌کنم بنابراین به یمان من دعوی هر شاعری در مقام ذهنیت شعری که آفریده اصالت داره و میگه شعری که آفریده اوست چه راه فجیعی و سو اسیده و بی ناصری بین نتیجه حالا این معنا رو ممکنو کسی دیگه ای توارید به ذهن بهتر بیان کنه شاید ولی اون شعر دیگه این شعر نیست مثل پرده های نقاشی است که شما حتی یک نقاش رو من نمیگم دو نقاش رو بدید یه چهره ای رو بسازید و از دو دید مختلف و دو منظر مختلف یه چیزی از خود نقاش در این تابلو است شما نمی تونید در مدل جستجو کنید این چیزی که نقاش به اونجا افسوده و این ذات اونهاست وایلا میشه دوربین عکاسی و دوبی عکاسی بی شک بهتر از نقاشی میتونه کوتاه‌ترین و کوچکترین و ظریف‌ترین نکته های چهره رو منعکس کنه ولی با این همه شما ارزش یک تابلوی عکاسی رو هیچ وقت به همون میزان قرار نمی که یه تابلوی نقاشی رو زیرایی چیزی از هنرمند در اون تابلوی نقاشی است که در زیروی عکاسی وجود نداره کاملا من برای این صبر می جواب سوال جناب باشه بله, بله استفاده آه. کردیم بسیار بسیار جولی تودشتید تا موره فرموده بودید که خاطره ای براتون نقل ای که مربوط به شعر و هم هست باحال که شما قانع شدید که حتت خاطره اداری هم از بند بشنوی تو این رو عرض و مربوط به اثر یک بیت شعره در اداره و چون قرار است که اسم اشخاص رو نبریم و ای کاش میتونستم ببرم و اخلاقاً تعهد نبود تا اون وقت بیشتر درک میفروندید که چقدر موثر یک شعر در تغییر وضعیتی روحیهی این رو براتون ارزم کنم من. بسیار مناسب برای ما من. بنده در یک ادارهی که بودم پرونده پیش بند مطرح بود که دو نفر در این پرونده دخالت داشتند و استقاک منفعت یکی بسیار زورمند قوی، پولدار متنفذ و بیزوق. چون اسمشو نمیارم میتونم صفات شو بکم یه مرد وارستهی که در اون موقعی که اون طرفش دنبال تحصیل دلیل میدوید این میدوید که مضمون بکش پیدا کنه کتاب خطی پیدا کنه از این چیز اون چه استنباط بنده بود این بود که حق به جانب اون مرد شاعر است که تحصیل دلیل نکرده ولی میدونید که پرونده حاکی از این عمر بود پرونده حاکی از این عمر بود ولی واقع قضیه غیر از این بود بنده در جستجوی راهحلی حلی بودن. یک روز اون مرد زورمن دنبال کارش آمد و بنده امروز فردا می کردم که بلکه راه پیدا کنم سرم خلوت بود و خواهش کردم که بنشینه و چند دقیقه صحبت کنم نشست و گفتم قربون از شما میخواستم خواهش کنم که بفرمایید که این مبلغ و این مقدار و این قضیه برای شما قابل نیست و ممکن است که تمنا کنم که بگذارید از او و رها کنید این کار رو شروع کرد برای اثبات حقانیت خودش به داستانی که من این رو بزرگ کردم من به این کمک کردم من به این محبت کردم و بسیاری از این مطالب و فعلا روی حق ناشناسی است که او از من کرده نسبت به من کرده که من این کار رو کردم سهید تقریبا یقین داشتم خلاف میگه ولی تا این حرفا تمام شد گفتم به همین جهت بادرهاش بکنید در آنکه مگر نشنیدید چوب را آب فرومی نبرد دانی چیست آرشایت ز فرو بردن پرورده خیش شما که خودتون این رو بزرگ کردید شما که خودتون این رو در اجتماع بهش کمک کردید فعلا ننگه که این کار رو بکنید آنن قلم و کاغذ از روی میز من برداشت گفت بفرمایید چی بنویسم ندارم دیکته کردم و نوشت و صرف نظر کرد از اون کارش و از خاطراتی است که به این جلسه که بزم شاعرانه است تقریبا تا حدی مربوط بود بسیار بسیار, بسیار نفوذ کلمه سرکار بوده و نفوذ اون یک بیت شعر البته نه خیر نفوذ شعر بود. بسیار بسیار استفاده کردیم و خوشبختیم و متشکریم از اینکه بیان فرمودی در این برنامه خب میبینم که آقای شریف زل زدم تو چشم منو دزیر چونه شونه و تارشون هم مثل بچه‌شون تو بغلشون گرفتند و آقای ایرج هم به لبخند ملیه بلویشون اومد از این حرف منو و اومدن بخونه ولی خنده فرمودید آقای ایرج خب آقای ایرج برای این هفته ای ما چی حاضر کرده شما می‌دونید که در برنامه ما باید فکر بکنید هر 15 یک بار نوبت شماست به چیز خوب تالی کنید البته همه आवाज‌های شما دلانگیزه ولی یه کار ابتکاری باید بفرمایید و منتظرم که آقای ایرج ایرجانه ی आवाज خاص برنامه وزن شاعران بخونه. حالا بنده امروز غزلی از مهداد اوستا میخوام بخونم. در در مایه دشتي. ولی نمیخواستم تیچو حسینی بخونید، تیچای आवाज رو بخونید. همیشه از دراماد شروع کنید. البته از دراماد شروع میواردید، شعر یا طرز به خصوصی اگه بتونید. خواهش میگونم من مخلصه طرز به خصوصتونم. <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بله پس آقای شریف ساکرم نوازش بدید گوشای ما رو با سازتون تا آقای حال بیان در برنامه میگفتن که من در برنامه برزا شایران تنم بگشت که برای دلم میزنم اونجور که دلم میخواد میزنم درمیجهت خوب میشه برنامه ボ بیگ بیگ چ Show sure. up! Sure. اوشری ثان هویی یعرا سرگشته‌ی دیوانه روسویا هرچه می خواهی بگو واقعا استفاده کردیم شما تشویق دارید اجازه دادم بله چاییم آوردن ادامه می خیلی خوبه حالا نوبت سومین شاعر ما یعنی آقای علی اکبر دولافی است اما قبل از اینکه آقای دولافی شروع بکنن اجازه میخوام یک سابقه ذهنی به شنوندگان درباره ایشون بدم یک شعر ایشان رو که در مشاهره خواندم خیلی ها با اون شعر عاشنایی دارند با اون شعر معروف هست مطلع اون قذل این است دوست دارم شم باشم در دل شبها بسوزم روشنی بخشم میان جمع خود تنها بسوزم این قذل است و من خواهش میکنم که خود آقای دولفی این قذل رو شروع بفرمایند و قذل بعدشون رو به نوبت به آقای پرویز بحرام خواهیم داد که و خواهیش خواهیم کرد که قرار دفعه خواهیش بکنم خواهی دولفی سرکار خواهیش بکنم دوست دارم شم باشم در دل شبها بسوزم روشنی بخشم میان جمع و خود تنها بسوزم شم باشم عشق خاکستر پروانه ریزم یا سمن در گردم و در شعله بسوزم لاله تنها شوم در دامن صحرا برومم کوه آتش کردم و در حسرت دریا بسوزم به کردم در شب تار سهروزان بتاوم شعله آهی شوم خود را ز بسوزم عشق شبنم نم باشم و برگونه گلها بلغزم ورق لبخندی شوم در قنچه لبها بسوزم یا زه همت پر بساگم بر سریا همچو انقا یا بسازم انقدر با آتش دل تا بسوزم خب آقای بحرام دیگه سرکارم هم زیاد بیکار نشینید و شیر دفوم آقای دولفیل سرکار برای هم نفرد خواهیش میکنم اشاره فرموند که آقای شریف بزنن و معموله میکره میکنم گنج شایگان دارد دانه دره گوشش عمر جاودان بخشد چشمه لب نوشش می رود دلم از حوش تا به ناز می رقصد دلاویزش روی مرمر دوشش بلبل از کجا دارد در بهار گلشنها آلمی که من دارم در بهار آغوشش خیلی. خیلی خیلی. نقم ساز خاموشم مست فارغ از هوشم تا مدام می نوشم میز لعل خاموشش بطرگوهر عشقی که از دو دیدم قلتید دانه دوری گردید بحر زیور گوشش ای که نازها داری دل نیازها دارد با کرشمه نازی دل برا ببر خوشش کرده شام تارم را بامداد نوروزی آفتاب رخصارش جلوه بناگوشش خیلی کرده شام تارم را بامداد نوروزی آفتاب رخصارش جلوه بناگوشش خوش دلم که میبینم نقش دلفریبش را در صفای اشک خیش در شوم فراموشش به به بنده اگر تعارف کنم که شعری ندارم دروغ گفتم چون نمیخوام دروغ بگم ده، ده خواهش می مجبورم شعری بخونم و به بزم امروز خاتمه بدم ولی قبل از اینکه شعر رو شروع بکنم باید عرض بکنم که این قطع شعر نامش نیایش است بنده تحت تاثیر حالتی خاص و توجه به مبدا ساختم و باز حالت نیایش داره و مناجات و امیدوارم بتونم با بیان نارسای خودم اون احساس و حالی رو که داشتم به عزیز منتقل کنم خب آقای شریف پس سرکار شروع بفرمایید تو بنده حال پیدا بکنم و شروع بخونم بنده درداشنایم به سر افتاده بی دست و پایم زقم ها سینه هم دریاست دریا گواهم گریه های های هایم به درگاه تو مین آلم بزاری مرا بگذار با این ناله هایم مرا در آتش اشقت بسوزان مکن زین شعله سوزان رهایم از این آتش دلم را پرشرر کن بسوزان سوز دل را بیشتر کن به آه در گلوبش کسته سوگند به سوز سینه های خسته سوگند به قم پرورده مهنت نصیبی که در خون جگر بنشسته سوگند به اشک مادری که از داغ فرزند برو ریزد به رخ پیوسته سوگند به بیماری که در هنگامه مرگ برای نالش آهسته سوگند به آن برگشت ایام نگونبخت که راهش از همه سو بسته سوگند مرادر بی کسی پیوسته کس باش به وقت ناله ها، فریاد بزن هزار افتاد به بی‌پایی به بی‌پایی که در راهی خزیده به بی دستی که دست از جان کشیده به محرومی که نالت در شب تار ز قمها جانو برلب رسیده به آن بیماردار شب نخفته که ریزت عشق مهنت تا سپیده به ناکامی که در شور جوانی به خاک سرد گوری آرمیده به پیر خست جان مستمندی که پشتش در توهی دستی خمیده به آن تفل یتیم بیپناهی که لبخند محبت را ندیده بده دستی که دستی را بگیرم ز خجلت پیش مختاجان نمیرم آفرین آفرین آفر. آفر. قسم بردست گاه کپریائی قسم بر شوکت عرش خدایی قسم بر بینوای سیرچشمی که دارد صد نوا در بینوایی قسم بر گلروخ عاشق نوازی که در او نیست رنگ بیوفایی قسم بر مادری که از هجر فرزند بود گریان به شب‌های جدایی قسم بر دختری از راه پرهیز شکیبایی کند در پارسایی درنگی را ز جان من جدا کن دلم را با محبت آشناک آشناک آشناک آشناک دعای شویدی دعا تو انشاءالله خیلی با حال خوندن خیلی با حال بسیار, بسیار خوب... خوب هم شعر خوب بود خیلی خوب خوندن تشکر میکنم خب یاران و دوستان عزیز بزم شاعران برنامه ما به همین جا پایان میپذیرد و بنده به اتفاق دانشمندان ارجمند، آقایان دکتر هاشرودی دکتر محمد علی معتمد و شاعران گرامی آقایان دکتر خسروب فرشید ورد علی اکبر دولفی خانم فیروزه امیر موئز و آقایان رزائیان و پرویز بحرام فرهنگ شریف و ایرج از همه شما خداحافظی می کنیم و برای شما روز خوش و دل شاد می طلبیم. روز بخیر